فرمود. فرمود چند چیز رو در چند چیز خدا پران میکنه یکی اینه اعمال مقبوله رو تو مثلا فکر میکنی فلان عمل قبوله اما نمیبینی اون یکی عمل از تو قبول شده مثلا فکر میکنی فلان پول فلان, بود، فلان, بود، فلان بود، کمک میری اوبر میبینی میگن نه هیچ کدوم قبول نیست همش ریا بوده همش عجب بوده همش همش همش میگی از بدبخ شدم که میگن یه, یه چیز تو قبول چیز شمول کردیم شمول چی؟ مثلا, مثلاً یادت, یادت میاد یه بچه تو, بچه تو کوچه داشت کوچه گریه, گریه میکرد ایستادی کنار این بچه مثلا گم شده پدرش رو پیدا کردی؟ مثلا فکر نمی آره همین یه دونه نجاتت میده از این موقع این از این عملهای صادق غفلت نکنیم عملت ساده همی که در فکر نمی کنه بعضی مقابعه همینا بهت میگن دید. یادت میاد اردوم اشد رفته مودی بله بل خوب یادت میاد میخواستی برین تو حسینیه یا تو حیعت, حیعت. آره یادم میاد دیدی کفشا به هم است خم شدی کفشا رو جفت کردی بله و همون عدبت قبولت کردی به فلان عمله اون قبوله از این عملهای کوچیک گافل نشین، از همین بالاتر ادعا نداشته باشیم. من خودم اینقدر چوب این ادامو خوردم به کارهای نکردم ادعا کردم و سر زمین خوردم خدا حفظ کنه استاد عزیز ها جای ایشون میفرمود یه جایی رفتم مثلا ما از اون رفتم رفتم با پول خودم با, پول با, خودم. با ماشین بزن خودم کنادر مردم با سختی با اذیت مشهد رفتم یه جایی چند روزم درس, درس قرآن دادم و اونا و یه اینا اینا. روز آخری حالا پاکتونو میبرم تشکر می اومدم برم یادم اصلا زودتر از من رفت تو طرف اصلا احترامم نکرد یه لحظه تو دلم اومد که ببین تو رو خود ما این همه اومد نه انتظاری از اینا داریم چشم چشمی داشتیم نه پولی میخوای اصلا انگار انگار یه احترام خوشقالی هم به ما نکردن یه لحظه با خودم گفتم وای فروختی رفت خراب کرد می اومدم نشستم قراب قراب کنار قراب حرم اینقدر حرم. گریه قراب قراب کردم رفتم. رفتم اگر اشتباه نکنم بیشه اون مرجع عزیز آمیزا جواده های تبریزی اعلالله مقامو شریف می رفتم اون جایی جنی شد میگه این فیلمت یه نگاهی بریم که اگر اشتباه کرده باشه. وای قراحتی خدا رو شکل زود فهمیدیم, فهمیدیم, مشرکیم. فهمیدیم مشرکیم ما پیرمرد, پیرمرد شدیم, شدیم فهمیدیم, فهمیدیم مشرکیم برشترکیم. از این مومنی عمل ها میره رو هوا وای پس جوری باشه من هیچ چی ندارم. ندارم. ندارم. ندارم سفر واقعا سفر سفر که خیلی خوبه من کیلومترها ها منفیم اگه این حال داری خوش مقالت؟ من بدبختم برامم دعا کن واقعا اگه به این حال ور سفر صفر نیستی چند میلیاردم تو بازار زمین گذاشتی <وزمان> یه زمانی برای خودت زمان ده اهل, اهل کسب و ده کار ده بودی؟, ده بودی آره, آره یه زمان زمانی داشتی الان نه, نه تنها مالم رفت, رفت سرماییم رفت, سر رفت, سر رفت بلکه رفت کلیم هم این بالا مردم دیگه باید برم گوش زندان یه حال اینجوری باید داشته باشیم واقعا ادعای کدوم کارم سینه زنی اینا که محبت عربابه اینا که آقای ارباب اجانا خداییش من لیاقت سر داشتن واقعا من الان لیاقت دارم اینجا باشم رو میگم خداشو وگرنه جات الان یک نفر قرار بود با حساب کتاب خودم حتی اصلا من اینجا من کجا اینجا کجا اصلا آغاییش شده محبتشونه حالا که ارباب ما رو تا اینجا آوردین بقیهش هم ببر هر باب ما رو رد نکنی از در خوندار رد کنی ما بیچاره ایم کجا باید بریم چه خاکی به ذر رو مدینه تو مدینه یه مدتی بود بارون نمی اومد مردم مدینه دوچاره یه قهدی بزرگ شدن میگه بیرون مدینه تو بیابونای مدینه مشغول کاری بودم یه هدیدم یه پیر مردی پشت یه تلیم زانو زد. زد. شروع زد. کرد درکت نماز, نماز خوندن دیدم دستار این, دست این پیر مردموند با بالا با با با با خدا با با با با با یا باران با رحمت, رحمت تو بر مردم نازل کن. کن میگه دیدم تا دستا پایین نیومده عبراه سیاه آسمان مدینه رو گرفت این مستجاب و دوکیه میگه دنبالش, دنبالش را افتادم من یه همچین آدمی, آدمی هم نشینم باشه, باشه, باشه چقدر خوبه تمه کردم به این پیر دنبالش را افتادم وارد شهر شد مثل سایه دنبالش, دنبالش حدسم درست, حد درست بود دیدم وارد محله بنی هاشم شد آره والا هر آره خیری با عالم میرسه از همین کچه پس کچه ها تو تو روزه میخوانم من نمیتونم این جوی آس... <تصحیح> میگه دیدم آمد آمد, آمد،, آمد،, آمد،, آمد،, آمد،, آمد <تصحیح> تو بارد سر درست بود تقل باب کرد خانه زینال آمدین و دروای کردن رفت فهمیدم از قلامان زینال آمدین خدایش ما, خدا ما قلامیم خدایش ما نوکریم نو نو نو نو قدیم نوکرها نو مریض شفا می دادن. دادن. قدیم روز خناب مریض شفا میدادم خداش خدا شاهد من جرمن نگیم همینم الان یکی به من بگه کفتن آمدن گفتن آمدن, آمدن, آمدن, آمدن آ آ فلان اینجوری مشکلی داره مریضی داره چیزی داره مرحوم علامه امینی هیچ چیزی نوشت فقط گفت ببر حرم میگه رفت و آمدن گفتن جواب گرفتی بعد آ جواب گرفتیم بدیم تشکر, باید تشکر, باید تشکر ببینیم. کردن کاری نکرد گفت چی ببینم کاغذ چی نوشته کردن آقا جان مولا جان یا میران اگر امینی محضر شما یه آبرو داره آبرو رو داره به خاطر آبروی من این مشکل حل حل ما آبرو نداریم ما آبرو نداریم خوزشت برداب مهمان منزل زین به دینو شد کویه نوکری داری آقا اومدم اگه میشه اونو به من ببخشیش خاندان کرمن هرمود بگو گلاما بیان همشون آمدن ایستادن کدومشونه باز. باز. هیچ هیچکدوم از اینان نیست یه او شد. شد اون پیر مرد بارگ و آخدشه سر و پایین انداخت آه دستار زین و جمع. جمع. جمع. لابه بیا جلو آمد گم برات میدونی برا چی آمده تو رو از من میخواد نوکر با معرفتی بود میدونه نباین هر فر باب زمین بیفته گوه آجان هرچی شما هم کنید چشم آفر باشه ببرش گفت آقا فقط یه خواهش دارم از شما میشه بگی بره فردا بیاد دنبالم مولان فرمودن فردا بیا دنبالش شب اومد تو حجرش این لباسهاشون جب میکرد ای این بخشهاشون میریش زوید جب میکرد گریه میکرد شاید این لب با خودش میگم بلو جدا شدن از این آستان خدا نکن خدا هرات میشه از جدا نکنه بخشه بس بست تا خود صبح گریه کرد صبح شد آمد گوه وعد وفا آمدم ببرمش برمش مولا گوه بری صداش کنید هرچی در زدن جواب نداد ما جواب نمیده درووا کنید در کردن دیدن پیره مرد سر گذاشده رو بخشه چاد داده اوزه جا بیرولم کولی میویرم و آبیسی گونسان لەر وەر بو ابذو المولی ابقو یا دست خالیم قابو اگر شد جان جان جان جان Hey آین که هشکی مال باش قابو نایول ازال ماند بذار اینجوری بگم همه نالم زنن آیا آقایی که کسی رو دست خالی رد نمی حتی تو گودار بگم دیدیخ مثلا حاجی از سفر میاد از توی محل, محل جد و حاجیب میرن خانوم اطرافیان میشیدم میگه خانوم برات سوقاتا بوده میگه برای برا من سوقاتا بود سوقاتا رو هم دیگه میگن آی بمیدم برایش تو کنف هم زلا جمع شدن. شدن, شدن, شدن, شدن, شدن یکی میگه برای من هم یکی میگه برای من آورده بچه هاش هم مثل خودش هم دیگه یکی میگم برا من گوشوالا یکی میگم گو برا من خلخالا دیدن یکی داره تو سرش میزنه زن, زن اخنسه میگه برا من امام خولی آورده اما اما اما دیدن زن خولی از همه بیشتر نالمی تو چه ته برا من سر جاورد نالجیب بسه دیگه حسین یه روزه خوندم بری تا سهل خلوت کنی بله حسینه You're